بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فقه نظام ساز جلسه استاد مجید رجبی جلسه اول ما امروز در خدمت شما عزیزان مضوع یعباران هستیم فقه نظام سیاسی هست من ابتداعا مطالبی رو به صورت مقدماتی عرض می کنم تا برسیم به اصل فقه نظام سیاسی طبیعتا دوستان در جلسات گذشته با ابعاد مختلفی از فقه نظام و فقه نظام ساز آشنا شدند و حتی فقه نظام مزافی یعنی فقه نظام مضاف به یکی از اشیاء مثل اقتصاد و تربیت و فرهنگ و ها رو هم حتما دوستان آشنایی پیدا کردند فقه نظام سیاسی فقه نظام است که مضافه به سیاست است حالا در ابتدای جایگاه فقه نظام سیاسی در, مقا... در مقایسه با دیگر نظام های اجتماعی شریع علیم کنید ببینید عنصر سیاست و نظام سیاسی مهمترین عنصر در سعادت و فلاح هر جامعهی بر اساس آیات و روایات ما هست وقتی میگیم عنصر نظام اجتماعی یعنی انصار فرمان اون نهادی که فرمان رو صادر می کند اون نهاد چه نهادی بود باشه اگر اون نهاد نهاد مشروع و بر حقی بود سایر عناصر نظام اجتماعی هم روی روال و روی ریل میفتن اگر اون نهاد بر حق نبود و مسیر درستی نداشت سایر نظام ها ولو فیل جمله ادالت رو برقرار بکند اما مطلوب شریعت نیست اینکه که من فقط یه حکومتی برقرار کنم که فقط عدالت برقرار کنم ولی اصلا منال... معزون من الله نباشد این در باقرار یا اینکه حکومتی که برقی از عباد درست میکنه برقی عباد رو آسیب میزنه این نگاه ناقصی از پس در هر جامعهی حالا پیش از این که برسیم به اسلامی مهمترین نهاد در هر جامعهی تعیین عنصر فرماندهی یعنی فر، فرمان هست ما ولی چی به حاکم در گذشته فرمان روا میگفتیم حالا همینجا هم دیگری ها یعنی کسی که فرمانش رواست فرمان او رواست حکم حکم او در واقع راه پیدا میکنه خوب. در روایات ما از عباد مختلفی به این مطلب پرداخته شده روایت معروفی هست در حدیث قدسی از امام صادق علیه السلام امام باقر علیه السلام هم هست روایات روایات مستفیزه هست در کافی شریف هست در دیگر منابع روایی ما هم وارد شده در منابع فقه اهل سنت هم به این مضمون روایات فرامانی دارید این ثوابت لاعذبن کل الرعیه فی الاسلام دانت بولایته امام جائرن لیسمن الله و ان كانت الرعیه فی اعمالها برتن تقیه میگید که یه جامعه رو در نظر بگیرید رعیت یعنی مردم در اعمالشون برنیکوکار بر هستند و تقوا هست فرمان است. اما اطاعت می کنند امام جائر این ظالمی که لیث من الله از طرف خداوند ازن در فرمان نداشته است فرمان باید از طرف خدای من باید ازن داشته باشم که فرمان می دهم خلق و الامر خلقت برای خداست امر و فرمان هم برای خداست و برای این که این خلقت و امر و خدای متعالی در فرمانش رو در جامعه اجرائی و عملیاتی بکنه چه کرده؟ یک قانون صادر کرده دو پیامبران رو فرستاده برای این قانون یعنی خداوند داره حکومت میکنه در زمین به چه واسطه؟ به واسطه ارسال رسول و نزول کتاب ولقد ارسل ناسدور 25 سوری حدید رسول نابل پیامبران فرستاده و انزل نامعهم الكتاب و المیزان کتاب رو فرستادیم میزان قوه عدل رو به اونها دادیم ليقوم ناسوب قسط تا جامعه قوام به قسط پیدا بکنند در پرتوبه اطاعت از این رسول و این کتاب و انزلن الحدید آهن رو هم در کنارش نازدیم که از امام می این آهن اشاره به جنبه های مبارزاتی این قضیه را یعنی این اقامه قسط نیاز به جنگ گفت. و نازل ال و که شدی. اسن شدید حالا پس این جایگاه فرمان روایی الهی است این فرمان روایی الهی چگونه در زمین تحقق پیدا می‌کند به واسطه ارسال رسول و انزال کتب و اگر از این دو تخطی شد یعنی فقط من به قانون عمل کردم، قانون گرفتم برای خودم بدون اینکه قانون رو درست بشناسم من از طرف خدا باشم این حکومت الهی نیست یعنی هم فرمان، هم اون کسی که مجری هست هم اصل فرمان باید از خدا باشد خب، حالا به خاطر همین در این روایت می که اگر یک رعیت، یک جامعه فی اعمالها بر تقیه در اعمال خودشون با تحبه و نیکوکارن. اما اطاعت تو وضعی نسخه های رو داریم یا دانت یعنی تدیان پیدا می کنن اه... التضام بیان می کنن. به ولایت امام جائری که رئیسه من الله پس شد در اعمال شخصیشون با تقوی هستند، در اعمال اجتماعی و حکومتیشون اطاعت از فرمان جائر رو دارن این جامعه جامعه خوبیست مذبوب است لعذبن نه با چند تأکید داریم به تحقیق عذاب میکنم چنین جامعه را یعنی این جامعه جامعه مدیو من نیست در طرف مقابل و لا اعفوونم کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت امام عادل من الله و این کانت رعیت فی انفوزها ظالمتن زید. حالا یک جامعه در طرف مقابل در نظر بگیرید که رعیت، یعنی رعیت که ندر جامعه است که در, در اعمال شخصیشون خطا خطاکارن، اما دانت به بلایت امام، عادل منندام، اما در اعمال اجتماعی و سیاسی و حکومتیشون تدیان به فرمان ولی خدا داره. ولی من ندام این جمله رو من میبخشم لا از این دست روایات ما فراوان ده داریم که حالا در حتما دوستان برخوردن باهاش که مثلا شیعه چه جایگاهی دارد ولو گناهانی انجام بدهد این کسی که ولایت ما رو نپذیرد که در واقع ولو اعمال خوب داشته باشد اعمالش پذیرفته نیست اون روایتی که بنیه اسلام علا خمس که صلات و زکات و حج و زکات و ولولایه و ما نودیه بشهیم که ما نودیه ولولایه که والی دلیل بر این هاست بر این هاست و اگر کسی تمام عمرش را روزه بگیرد نماز بخواند حج انجام بدهد تمام انبالش را صدقه بدهد ولن یعرف ولایت ولی الله روایت صحیح است مزامین مختلف باید این زده های هم بکنی. ولم یه عرف ولی الله ولاید ولی خدا را نشن نشناست فی اعمال او به دلالته اعمالش و رفتارهای رقدارهای اجتماعی رفتارهای سیاسی کنشگری هایو به دلالته به دلالت و راهنمایی ولی خدا باشد ما علی الله حق فی ثبابه خداوند حقی بر خدا حقی در ثباب ندارد خب این یک توضیح یک نکته بسیار مهم حاصل در کافی شریف جدی یک صفحه و 376 این روایتی که خدمتون از کردم اومده تحلیل این روایت چیه در فلسفه مقام معظم رهبری تحلیل خوبی برای این روایت اومده ایشون یک مثالی میزنن در که و حکومت مثال میزنن میفرمایند که فرض کنید یک ماش... من میخوام مثلا حالا مشهد بوده این صحبتشون میگه من از مشهد میخوام برم کجا؟ میخوام برم نیشابور. سوار ماشینی میشم که این ماشین مسیرش درسته، به سمت کجاست؟ به سمت نیشابور. حالا این ماشین مثلا فرض کنید که بالاخره خرابی‌هایی داره، مشکلاتی داره. آدمایی که توی این ماشین هستن، آدمایی بداخلاقی هستن، آدمای بعضی آدمای بدگنوشی هستن. مسیر این ماشین مسیره مسیر چیه؟ مسیر درستیه. مسیرش به سمت هدفه. این میشه در طرف مقابل من میخوام بیام نشابور ولی سوار ماشینی میشم که این ماشین داره میره سرقس ماشین داره میره به سمت سرقس شمال شرق نشد از جایی که بیاد به سمت قرم. خب حالا برای این ماشین خیلی ماشین شیک و تر و تمیز و که اونجا هستن خیلی کشیده و با اخلاق و متقلق و همه چی تمام مسیرش غلطه مسیری که این ماشین داره میره خلاف اون جهتیه که جامعه قرار بوده این جمع قرار بوده به اون سمت بره دلشون رو خوش کنن به اینکه خیلی انسان‌های خوبی هستن ماشینشون خیلی شیکه کولر خیلی خنکی داره آدماش خیلی می‌فرمایید که ببینید اون جامعه‌ای که فی بر برتن تقیه اما دو نسله ولایت امام جواد من الله همون ماشینیه که داره میره به سمت از هدف اون دور می‌کنه مسیر حرکت جامعه رو کی مشخص میکنه؟ فرمان، روا و حاکم سیاست های جامعه رو که مشخص میکنه؟ اون نهاد و حکومتی و حکمرانی این حکمرانی اگر مسیرش درست بود ولو گرفتار چالش های مختلفی در عرصه های شخصی و شخصیتی و فردی شدیم جامعه داره مسیر درستی بود ولو اون جمعه شخصی ما درست بشه اونها درست نشه اندک ممکنه که ولایت امام عادل هم خراب بشه ولی ولایت امام جائر جایگذین ولایت امام عادل بشه هست تزمینی وجود نداره که امامت امام عادل یعنی گناهان شخصی انسان رو به مسیر گناهان اجتماعی میرسانند. اما در مقایسه شنین جامعه چنین دو جامعه اون جامعه ای از نظر شریعت مطلوب است که مسیر را درست می روید ولی گرفتار مسئله های مشکلات فردی هست ببینید این دقیقاً تقدم فقه نظام و فرق کلان بر فرق خورده است یا به تعبیر دیگر رفتارهای سیاسی و اجتماعی و رفتارهای فردی یعنی شما یک جامعه رو میخواید خیلی جالب بود در پروموشنات اخیر مقام معظم رهبری هم 14 خدا دودیه بحث دینداری در جامعه مطرح شد که آیا جامعه ما دیندار هست یا نه یاد اشای هم جامعه شناسان ها نوشتند که آقا دینداری در جامعه این است این است شاخص برای سنجه دینداری در جامعه چیست شاخص چیست؟ شاخص این است که مثلا فرض کنید حجابش درست باشه نماز بخونه یا نه تدجنب ولایتش انجام اجتناب از طاغوتش اقامه دین و مظاهر اجتماعی مقاومت در برابر فرماند بلغت به کل رسولا پیامبران رو عبود الله خداوند عبادت بشه. عبادت خدا یعنی من بشم نماز رو نه. یعنی اطاعت بشه خدا. اطاعت خدا در اصل کلام وجتن بو تاغوت. از تاغوت اجتناب شود. یعنی شما اگه در اطاعت تاغوت هستی عبادت خدا نکردی اینا با هم تقابل داره. اگر در اطاعت تاقود هستی به مسجد الحرام هم هستی خادم حرمین هم هستی تو در اطاعت تاقود هستی نه در عبادت خدا این اون فهم این هست که بعد به شیعیان هم مشرک هم میگن این مشرک که در اطاعت تاقود هست به شیعیان مشرک این شناخت این که چه کدام دین. دین داری که میگیم دین مطبوب شریعت چیست و کدام عرصه ها مهمتر است برای شاره برای خدای متعال. این از خود منطق منظومه دین باید کشف شود. ما روایات فرامانی در این زمینه داریم که حالا مجالش فراهن میز من در همین میزان در همین میزان اکتفاق میکنم. فرمان جامعه اگر در دست انسان های صالح قرار گرفت مسیر اون جامعه به سمت سلاحه ولو اینکه گرفتار چالش های فرمان, فرمان به دست ناصرهان قرار گرفت مسیر به سمت سقوط میره ولو به لحاظ فردی و شخصیتی باقی از عرصه های جامعه عرصه های مسلمش. البته هدف اون جامعه صالح، هدف اون حکومت صالح همین هست جامعه رو به سمت تعالیه و کمال مطلق هدایت بکنه اما تو این مسیر این مقایسه و این چالش ها ما رو به مقاط مهمی رهن کن پس نکته اول این هست که مهمترین نکته در در واقع نظام اجتماعی اسلام اون نظام سیاسی و اون حکمرانی هست اینکه حکومت و فرمان به دست چه کسانی به دست چه گروهی و چه گونه قدر اختیار اینها قرار میگیره این منطقی عنصر هست که ما باید به توجه داشته باشیم حالا اگر دوستان نکات سوالی چی هم دارن میتونیم دقایقی رو در انتهای وقت به اختصاص بدیم برای اشکالات و نکات و پیشنهاداتی که دوستان دارن دو دوم یعنی اساساً قرار است که نظام سیاسی مدیریت فرمان رو از منظر شریعت برای ما مشخص بکنه فرمان‌های اجتماعی چگونه صادر می‌شوه چه کسی فرمان صادر می‌کند چگونه فرمان صادر می‌کند چه کسانی را به فرماندهی می‌گمارد چه ارتباطی را با مردم دارد مردم چه جایگاهی در این نظام فرماندهی و فرمان روایی دارند اینها موارد کلیدی فقه نظام سیاسی است با همه گسترد حالا فرمان که میگیم در سه عرصه اجرا تقنیم، پانونگذاری قضاوت و پایش و نظارت حالا عرصه امور نظامی هم میشه بدید که از عرصه ها شاید قضا. تو این عرصه ها باید هطولانی کنند مدیریت بعد عرصه های هم هست عرصه خارج از سرزنی به عنوان سیاست خارجی یا رقابت این رو ملل مطرح می شود. در ارتباط با دیگر دولت ها در ارتباط با دیگر مللت ها اینها مسئله فرمان رو در جامعه بهش می پردازه این فقه نظام سیاس مطر دوم در خصوص پیشینه فقه سیاسی فقه نظام سیاسی ببینید ما خب از اونجایی که در یعنی به عنوان یک رشته علمی طبیعتا ما فقه سیاسه نداشتیم اما احکام سیاسی در فقه ما فراغان میدیم یعنی شما از کتاب المقنعی شیخ مفید که اولین کتاب های فقهی چیه ما ملازه بکنین تا مقصود شیخ دوسی تا شرایع الاسلام محقق حلی تا برسیم به محقق کرکی بعد جواهرال کلام و همینطور به دوره موسیقی مسئله های فراوانی در عرصه سیاسی به عنوان مسئله های سیاسی در کلامات فوقها میتونیم پیدا بکنیم البته در هر دوره این مسئله ها متخابط بوده یعنی بسته به اینکه چقدر فضا برای طرح مسائل سیاسی وجود داشته طبیعتاً مسئله های سیاسی متفاوتی مطرح میشود مثلا فرض کنید که مسئله ولایت منقبل جائر بسینا یک مقاسد دیگه باشم مقاسد معرمه نوع رابع مسئله یکی از مقاسد که مسئله میکنه ولایت از طرف جائر است یعنی من میتوانم تصدی مسئولیت بکنم در دولت جائر یا نه این از حاله معونت آیا کمک کردن به ظالمین من در زیر حقوقات ظالم زندگی میکنم کمک کردن به ظالمین جائز هست جائز نیست این از مسئله های سیاسی بوده. آیا خراج رو می توانم به مالیات رو می توانم به سلطان بدهم یا ندهم؟ این از مسائل ما بوده. آیا جایزه از سلطان، هدایای سلطان رو می توانم دریافت کنم یا نمی توانم؟ یه تعبیری دارن آقا مازن رهبری واسه تعبیر جالبیه. میفهمن که فقه ما تراث فقهی ما مباحث بسیار عرضشمندی به لغاز محتویی و به لغاز موجودی دارد فقط یک ایراد بزرگ داره که امروز بهش نگاه میکنه و ایوشتیه حتی در زمان خودش خوب برای امروز که داریم نگاه به قیاسه الا زمان نهازا است و اون چیست؟ که این فقه برای جامعه مستضعف زیده ورایت جائر نوشته شده است نه برای یک جامعه ای که الان به حکومت رسیده و حکومت داره وقتی حکومت دارم کتب زلال رو هم که میخوام بررسی بکنم دیگه نمیان وزای رو بگن که می توانی کتب زلال بخری یا نمی توانی میام میگم که وزارت فرهنگ ارشاد در مواجهه با کتب زلال چگونه باید برخورد در مواجهه با فیلم هایی که صد برابر کتب زلال زالده هستن چگونه باید برخورد اونم با توجه به شرایط اقتصادی که نمیتونم کامل جلویش بذاریم و مثلا هزار تا رو راه قرار میگیره حالا چه اولی لازم یا مثلا فرضی مسئله رشوه داره مطرح میشه در مکاتب رشوه داره چگونه میفهمیم که فرق میتواند بگیره یا نمیتواند هدیه میتواند بگیره یا نمیتواند؟ برای مثال اگر کسی هدیه میخواد بگیره قصدش فقط گرفتن هدیه و این کسی هدیه میخواد بگیره قصدش فقط صرف نیکی و هلیه باشه ایش قصد بدی نداشتش اشکار نمید خب این فتفای فردیه حکومت که نمیشه این فتفای رو با قصد انسانها حکومت چه وضایفی در مقابل رشده بذاره. حکومت چه وضایفی در خوزیه کتب زلال داره؟ فراتر از این یه وقتی من میگفتم ولایت از طرف جائر تصدی مسئولیت در دولت جائر جایز هست یا نه یه وقتی من یک نظام کارگزارانی عریض و طویل دارم. باید يا کارگزار بشینم بنویسم من چگونه کارگزار انتخاب کنم چگونه کارگزار عزل کنم چگونه نظارت بر کارگزار داشته باشم چه کسانی میتوانن کارگزار من بشوند آیا کفار میتونن کارگزار دولت اسلامیشن کافر اهل زمه؟ اهل سنت میتونن کارگزار دولت اسلامی بشن یا نمیشه انسان های فاسقی که همین عادل امانت دارن میتونن کارگزار بشن خب سوالات جدی. میان در حوزه روابط اقتصادی یه وقت روابط اقتصادی من منحصر در مکاسب بود روابط دو نفر با هم میخوای معامله کنی؟ اونم اجتماعیه در پل ولی روابط دو نفر با هم اونجا هم فخه سیاسی داریم فخه سیاسی چیه؟ مجریه میگه اگر این دو نفر مثلا پرچنه دیه یکی باطل بود کی باید حق اون کسی که ظلم به شده رو بستاند این وظیفه حاکم اما در حد خود. حالا میرسیم به نظام اقتصادی. روابط طولی باید چگونه باشه؟ نظام توزیع باید چگونه؟ توزیع ثروت چگونه در جامعه انجام آیا نظام یارانه‌ای خوب است؟ یا نظام دیگری وجود داره؟ بانک اسلامی، بانک هم حالا تعبیر بانک ماورایی دیگه. نظام روابط اقتصادی باید پول چگونه باید در قبال بدل بشه؟ اینها مسائلهایی هست که ما در فقه فقه واسه رابطه اینون ملل دولت اسلامی با دولتهای کفار چگونه رفتار کنه با همه کفار قطع رابطه کنن یا نه فرق هست بین کفاری که دشمن ما هستند و کفاری که دشمن ما نیستند مثلا آیی 89 سور مالکه منطهنه به همین تفاقه اشاره کرده لای هم ها کمون لا انالذین ها ان لم یقاتلو کم فدین و لم یخرجو کم مندیارکم انتبر روحم و و دوبار نهیم شما رو که نسبت به کفاری که لم یا قاتل رو با در دین با شما نمیجنگه شما رو از خانوکاشاناتون بیرون نکردند که به اینها نیکی کنید و با اینها با است رشد کنید این نماهای الله. و دوباره کسانی رو نهی میکنند که باشند رابطه داشته باشید که یا قاتل رو و اخراجو کم اندیال و ظاهر و علاو اعضای به کمک دشمنانتون میاد. شما رو از خانودياتون بیرون کردن مثلا رژیم صحی مستی. یا قاتل کونفدین در دین با دین شما مشکل برن. با این دین دینی که گفتم مبارزه با 타غوت میکنه نه اون دینی که فقط نماز میخونه. با این دین شما مشو با دین شما دارن می جنگن و دشمنان شما یا این که خودشون نمیجنگن دشمنان شما رو کمک میکنن واحر و الله. با اینها نه مبارزه داشته باشید اما بوقی خب یک بیان اجمالی با عنوان نمونه خب پس ما در حوضی روابط هم نیاز داریم که ببینیم اصلا شما در کتاب های فقی بگردیم کتاب های فقی سنتی کتاب قدیمی این بررسی آیات، این آیات برسیفیقی نشده چون مسئله شون نبوده ما امروز هست که به این یعنی یک حکومتش تشکیل دادیم باید همین فقر را بازخوانی کنیم از تهارت تا با این نگاه که می خواهیم تکلیف حکومت اسلامی رو کشف کنیم در عرصه سیاست ها رو بطور خاص انجام بدیم بله برخورد کردم مسئله های فقهی که در یعنی فقه سیاست به گونه ای در گذشته مطرح بوده حتی وظایف حکومت رو هم گاهی باید می‌کرد مثل مسائل جهاد مسائل جهاد وظایف امام مشخصه وظایف مردم مشخصه این گونه نبوده که فقه ما فقط مختص به فرد باشد نه این درسته به فرق و در واقع افراد با هم دیگر مثل مباحث بی و حتی وظایف کلان واجبات کفایی مثل بحث جهاد و اونها میپرده اما حد اقلی بوده بیشتر حول مباحث سعادت فردی میگذشته چرا؟ به خاطر اینکه شیعه در اقلیت بوده به خاطر اینکه شیعه حکومت نداشته به خاطر اینکه شیعه همیشه در حال تقیه بوده شما بینید کلمات فوقعال رو نگاه کنید مثلا در موضوع صلاحات الجماعه دارید کلمات فوقه رو ببینید در اونجا فوقه های ما بحث میکردند فقید اگر خوف زرر معتنابه نداشته باشه امن از فساد و زرر باشه میتواند نماز جماعت اقام کنند یک دریا حرفتونی فتحه که خیلی از فوقه های ما بینید چرا حرف حکومت نزدند این اقامه نواز جماعتش به کلی قید و قید اونم جوازه و استحباب اقامه جماعت اگر خوف از معرف الفساد خوف از زرد وگرنه نه نه نهره طرف بشه این همچه بوده شیعیان ما در دورهای مختلف اصلا شهر هله میدین چگونه وجود اومده که ابن حدیث هلی مؤسس و حوزه در قرن و بعد در قرن 7 و 8 علامه هلی و معققه هلی و ابن بعد علی و خاندان آل تابوس همه اینها مال اهل هلله هلله هل شهری که حسن خدوسش با شیعیانه اینها در اثر ظلم و آزار و اذیت های اهل سنتی که سلجقه سلجوقیان که در بغداد حکومتی رو دست گرفته بودند و اینها از بغداد کوشش میکنند میان در یک شهری جنب جنون هلله تاسیس کنند همواره در ترس و در آوارگی بودند بعضا شعیان لبنان شهید اول شاید سانوان ها در دولت عثمانی بودن تا دوره صفویه که یک مرکزیت شیعی ایجاد می‌شود. حالا نمیخوام تاریخ سیاسی هارتون بیام بس حلمان حرف میشون میخوام بگم که در دوره صفویه حالا به این اشاره کنم که یک مرکزیت شیعی ایجاد می‌شود. اینجا فقه ها میان با دربار و سلطان هم همپاری میکنند می صاحب کرکی میشود که شاه تماثر صفبی به سر شاه نامه ای می نویسته درخواست می که محقق از محقق کرده که اهل لبنان بوده جبل آمه در, ب... در نجف یا در بغداد زندگی می کرده در نجف بوداره که محقق شاه ازشون می خواد که شما بیایید در ایران و همه امور شرعی رو به دست بگیرید و بعد مقبوله امارم نه هم در حکمی که برای محقق نوشته میآورند میگه از اون جایی که تبر فرموده ای امام صادق من کانن لمن من کن قدره با حدیث انا و حدیثا و نظر فی حلال انا و حرام و عرف احکاما و, و به حکمان فانی فا جاءت علیکم حاكما و بعد الراد علیه کراد علینا هر کس باط شما مخالفت کند یعنی با حکم امام معصوم مخالفت کرده و عشد مجازات خواهد رسید در یک نامه دیگه داره که ما هم از طرف شما داریم اینجا حکومت میکنید بعدی اینجا حالا محرخش میاد یه حدود 5-6 سالی در اونجا حضور داره که خدمات فراوانی در حساب کتاب این نامهی که نعاد نام کردم، محروم محدث بهرانی در لعولاتو البحرین خودش این نامه رو آبارده ایشون. اینا معاثره با همون دوره هستن اینا کتاب سنت های روشنی داره که البته میگن که در واقع توسط برخی از درباریان مسموم هم شده محروم محرخش که برخی نقل ها بشه به مرگ طبیعی از دنیا نرفته خب اینها میان اولین کاری که میکنه یه کتابی نیست کتاب صلات الجمعه اونجا اول ثابت میکنه که هر آنچه که نی... هر آنچه که امام معصوم ولایت داشته در اجتماعی ولایت هایی که نیابت بردار هست همه اش برای فقيه وجود هست اونجا نیابت عامه فقيه رو در کتاب صلات الجمعه ثابت میکنه و بعد میگه صلات جمعه در دوره معاصر هم نسانو جایزه ور که مستحب است کتاب خراج می‌نویسه که خراج رو می‌شود به سلطان بدهید سلطان معزون بدهید و چندین و چند وقت اجرای حدود می‌کنند فقها دارند یواش و دیگه فقهای شیعه از دوری صفبی به این طرف در واقع فضا اینجا میشه که بیان فعالیت‌های سیاسی انجام بدن و هر چه بیشتر می‌اومد رو در دوره قاجار به یک شکل فتاوای جهادی که می‌دادن فتاوای تنباکو مرغون ویزا در دوره مشروطه فقهای ما اومدن برای تدبیر اجتماعی و جلوگیری از ظلم سلطان وارد کار شدن چه خازداران بهش ادالت خانه و مرحوم اخوند خراسانی و محقق ناینی بهش سلطنت مشروطه رو مثلا در تنجل حالا هرو به هر حال وارد شدن که سلطنت و یعنی از فقه هم دارن استفاده میکنن فقه ما مدون داره با السهاب بعد به خصوص در دوره مشروطه به این طرف با استعمار غرب با مسائل مستحدثه و نظام تمدن غرب در های تمدن قبیله واشاره شده درگیر میشن تا میرسیم به انقلاب اسلامی پس فقه سیاسی در طول تاریخ ما داشتیم چطوری نبوده که من در درآوردی باشم اما هر چقدر ظرفیت در فقه، هر چقدر که در واقع فضا بوده این ظرفیت رها شده هر چقدر که جلوتر هم این ظرفیت بیشتر رها شده امروز بنسبت به, نسبت به صد سال گذشته، 40 سال گذشته، 200 سال گذشته این ظرفیت بیشتر راه شده. و هر جلوتر برویم و این ها قویتر و جدی‌تر بشود، این ظرفیت بیشتر پیش راه تا برسد به تمدن اسلامی و برسد به ظهور از حضرت که لنیوزرهم علت دینه کله. ان شاء یعنی این, این مسیر رو ما میتونیم ببینیم. من این نکتر رو تاکید تا طبق… یک وقت توهم نشود که مثلا احکام سیاسی فقه سیاسی یک دانش است که نبوده نبوده اما اولا محوریت فرد بوده جامعه در زیر نظام جائر رو میخواستن مدیریت کنن یعنی به درد همین الان به درد بفرمایید که مسلمین و شیعیان در دولت, دولت های کفر میخواه چگونه تعامل بکنن با سراتی اما برای یک ای که داره به قدرت اقتدار داره قدرت داره نظام کار و, کار،, کار و کارگر داره کارگزاران داره رعاوت اجتماعی داره رعاوت سیاسی و دولت‌ها داره اقتصاد داره فرهنگ داره هنر داره اینها برای اینها ما باید بشیم فقه رو به طور جدی کنیم ما امروز بیشترین رشتهی که بهش نیاز داریم رشته فقه هست اجتهاد فقهی هست تا بیام این رو در عرصه‌های های فقه های مضاف به کار ببندیم تا بت و جامعه در عرصه ای کلان رو در این زمین ها کشم این هم آلا بحث پیشینه فقه سیاسی به اختصار خدمتون عرض کردم مطلب سوم این هست که ببینید ما وقتی میگیم فقه نظام سیاسی این فقه نظام سیاسی یک سری مؤلفه‌ها ها و ویژگی هایی داره یعنی باید یه سری توجهاتی به این دستگاه, دستگاه فقیقی هست که یه سری ویژگی هایی داره ویژگی های این دستگاه فقیقی چیه؟ ویژگی اینه که اولا موضوعش یک موضوعش فقط فرد نیست موضوعش حکومت هست، جامعه هست موضوعش گسترده تره از اون چه که ممکن است که در وحله اول تبخش توجه تلقیه و نیاز به فقه باشه پس این نکته اول یک سری, و... یک سری تکالیفی وجود دارد که موضوعش موضوع فرد نیست ببین ما این رو باید نتاجه باشیم بس تکالیف وظیفه فرد است. بس تکالیف وزیفه فرد نیست این رو هم من باز از مقام اطلاع برو جردی خدمتون عرض می‌کنم. شما میفهماید که نفل اجتم اموراً لا تکون من وعف الافراد در جامعه اموری هست که از وظایف افراد نیست و لا تت تو بهم اونرففت به افراد ندا این افراد این فرق فر بل تکون من الامور عامتل اجتماعیگر از امور عام اجتماعی هست از امور عامه هست امور آمه یعنی چی؟ امور آمه رو مرحوم شجن انصاری هم در مکاسه در بحث بلایت فقیش فرموده فرموده اموری هست که کل قوم یرجع و اله رئیسه هم اموری که هر قومی سراغ رئیسش میره اینها رو میگن امور آمه میگهد اینا از امور آمه هست که یتوقف علیها حفظ نظام اجتماع حفظ نظام اجتماع متوقف بر روست مثل القضاء مثل قضاوت و ولایت الغیب بالقصر فرایت بر امور امور در واقع مختلف که روی زمین بنده بیان حفظ و انتظامات داخلیه حفظ نظم داخلی حفظ نظم انتظامات داخل سرزمین اسلام مثل امنیت و صد سغور حفاظت از مرزها و امر به جهاد و دفاع انده حجوم اعدام امر به جهاد و دفاع در هنگام حجوم حجوم و نحن زالکنه مایر تر تو به سیاست مدون که مرتبط با سیاست مدونه میگهد این از اموری نیست که وظیفه هر کسی باشد بلکه از وظایف قیم الاجتماع است وظایف حکومت است پس ما یه سری احکامی در فقه داریم که وظایف فرق نیست وظایف حکومت بعد در ادامه فرمایت بلکه میتوان گفت اکثر احکام اسلامی از این قبیل است. یعنی همان خوب اکثر احکام اسلامی از این تجربه این در حساب الطر ظاهر في صلاه بر مسافر صفحه 74 بعد استدلال بر ولایت فقیه رو اینجا آوردند که دلیل اقلی و عقلی شرعی بر ولایت فقیهشون رو اونجا کردن در مقدمه در مقدمه اولش به این اشاره میکنه که اساساً اسلام احکامی دارد که از وظایف افراد. پس توجه به این بشه باید که فقه نظام سیاسی ویژگی اولش اینه که وظایف افراد یعنی فقط وظیفه افراد رو نمیخواد درست. چه را وظایف افراد هم دارید؟ مثلا وظایف افراد اینه که خب شما فرض کنید جزئی حکومت جائر چگونه زندگی بلاات از بلای جائر داشته باشه یا نداشته باشی. آیا مهاجرت از دولت کفر به دولت اسلامی واجب است یا واجب این سیاسی فرد اما اکثر احکام سیاسی از وظایف حکومت و از وظایف کلان جامعه است نه وظایف این این ویژگی اول که حالا باز اینو باز میگم توجهات زیادی داره به اختصار میگم ویژگی دوم اینه که این فقه فقه نظاممند نظام بخش است. هم نظامنده و هم نظام مند. حالا اینها رو باید توضیح ما معتقدیم که همه فقه ما این گونه هست دقیق نیستیم که فقط این فقه نظام همه فقه ما دارای یک, نظم و... یک نظمیست یک است و برای تنظیم امور جامعه آمده فقه ما یک فقه خوش که بدون توجه به سعادت دنیا و آخرت نیست فقه ما به حداقل تأمین سعادت در دنیا و آخرت آمده. فقط نیومده که آخرت ما رو تأمین کنه. آمده که اصلا دنیا مزگات و آخرت چه که از برخی از برخی از, از متفقه یا برخی از کسانی که کمتر توجه به ابداد و لوازم حاضرشون دارن در میان که آقا فقه ما زمانه نداره نداری که دنیا رو آباد کنه. فقه ما فقط ما رو از عذاب و آخرت نجات میده. سامس شریعت و زیر ما منون شهیستد تعریفی دارند برای حکم شرعی در حلقه ثانیه و امایت که الحکم شرعی الحکم شرعی حبت تشریح و صادر من من الله تعالی لعجل تنظیم حیات الانسان حکم شرعی تشریعی که از سوی خدای متعال صادر می شود برای چی؟ برای تنظیم امور نزید. برای تنظیم امور نزید. از فرق هست. اساسیجیه فقه فقه نظام سیاسی این است که برای تنظیم نظام بخش است. یعنی که به موقعی فرقاً مند بکنیم نظم جامعه برقرار نمیشه. مجبوریم از این احکام دست برداریم تا ببینیم نذار. نه اون احکام در احکام غلتی بوده. احکام اگر حکم شرعی باشد، من الله باشد، باید در جامعه نظم برقرار بکنیم. لعجل تنظیم امور الانسان حالا این رو از کجا آدر میاریم که لعجل تنظیم امور الانسان اینجا من شما رو توجه میدم به این نظام مندی بودن و نظام بخش بودن این ویژگی دوبون بود به خطبه دویست و شانزده نحجر من خود رو نتون باز کنم که بخش هایی که در این خطبه حضرت افتداعا به این اشاره می که ببینید حق و تکلیف ابتدا به در واقع تکافا حق و تکلیف اشاره می کنن. که حق و تکلیف چی هستن؟ با هم دیگه تکافا دارن یعنی چی؟ یعنی هر جا حقی هست تکلیفی هست هر جا تکلیفی هست حقی هست بعد بعد از اینکه اینو توضیح دادن می فهمویند که ببینید این حقوقی که خدای متعال قرار داده حقوق و تکالیف یعنی فقه حقوق فقه ما فقط تکلیف نیست حقم هست اصلا مگه میشه تکلیف بدون حق باشه شدید حتان از بعضی از تو از آقای فکری که آقا فقه شما تکلیف محور است حقوق مدرن حقوق زمانه امروز حق محور است چون باید از تکلیف محور قدول کنید بیایید سراغ سر هم مهبر خب یه فریده چرا چون هر جا تکلیفی هست, حقی هست. هر جا حقیه هست, حقی هست هر کسی تکلیف دارد حقی هم به همون نوزان دارد و هر کسی حقی دارد به همون نوزان تکلیفی هم دارد من اگر تکلیفی دارم نسبت به شما نسبت به خانواده نسبت به حکومت نسبت به جامعه حقوقی هم دارد و اگر دیگران حقوقی دارند نسبت به من تکالیفی هم دارند این هست این, که این حقوقی که خدای متعال در فقه ما قرار داده حقوقی هست که تتکاف و فی وجوه ها هم رو می پوشاند در جهات مختلف با هم برابر در بینید که میگم فقه نظامنده یعنی و یوجه با بعض آقا بعض هم. بعضی از اینها موجب موجه بعضی دیگر می شود بلا یستی و سوجه به بعضها به بعضه بعضیها واجب نمی شود مگر به خاطر بعضی دیگر یعنی چه یک منظومه است یک منظومه به هم پیوسته ولذا اصل به هم پیوستگی شریعت شما داشت آجه کنید شریعت احکام منفک مستقل بیربط از هم نیست شریعت بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه آمده غرائز مختلف انسانی رو در عرصه فردی و نیازهای مختلف انسانی در عرصه اجتماعی رو مدیریت کنیم و در عرصه مدیریت این غرائز فردی و نیازهای اجتماعی ما به چی برسیم؟ ما به یک جامعه صالح برسیم یک جامعه که لیقومن ناسو ناس یعنی جامعه نه تک تک افراد لیقومن ناسو بالقس قس یعنی میتونیم ترجمه آزادش ادارت اجتماعی خب احکامی که اومده ادارهات اجتماعی انجام بده میتونه خودش منظم نباشه خودش بیربط باشه الان اگر فرض کنیم ما یه قانونی داشته باشیم که این قانون بعضی عناصرشون دیگه رو بزنه به تنوغذ با هم باشن یکی هدفش مثلا به این سمت باشه یکی هدفش به اون باشه یکی ما رو ببر به سمت شمال یکی ببر به سمت جنوب حالا ما تخطی نمیکنیم چه قانونی نوشتیم این چه قانونیه برداشتی نوشتی برمون؟ حالا اونایی که نظام این کار میکنن نه چرا میگید فقه نظام ماست؟ یعنی شما خودت، بشر اگر یه قانونی برمیسته منسجم نباشه تخته اش میکنین میگی خلاف حکمته خلاف تدبیره طبقه داری خدای متعاد قانونی برای بشر فرستاده، و بعد این انسجام و بهم پیبستی در پرش نباشه دلیل ما چیه در اینجا؟ خطابه نمی کنیم ما. مبادرنی، بقوله، حالا تعبیر معنی و تقدیم. داریم دلیل ما اصل حکمت خدای متعال، حکمت در تشریع. همه ی رفتارهای خدای متعال حکیمان است. عنصر نظام مند بودن هم دلیل عقلی دارد هم دلیل نقلی. دلیل عقلیش استفاده از اصل حکمت در تشریع. دلیل نقلیش همین خطبه دینی سسوزه نشه قرارو هست که میفرماید این حقوقی که خدای متعال قرار داده حقوقی هست که تتاکاف وفی وجوه ها با هم دیگه برابرن یکسانن لا یوجه با بعض و بعضن بعضی ها بعضی می میکلمن میگه اینکه اومد باید مونن بیا دیگه سیستم دیدی وقتی در چناره هم میخواد قرار بگیره یه ماشین میخواد درسته ماشین ما ها یه سیستمه احکام شرعی هم بهمون یه سیستم نشه یک نظام که از عناصری تعبیه شده عناصری داخلش تعبیه شده که این عناصر و هم به هم پیوستگی دارن و در راستای یک هدف، نظام یعنی همین. شما ماشین رو هم یک نظام بفرمایید که جامعه انسانی هم یک نظام، بانک هم یک نظام، آموزش فرآج هم یک نظامه. نظام. و بسیره رو اون نظام رو متعلق چیزی بوده. این نظام چیست؟ یک مجموعه اجزایی هستند. دو، رهبری و فرمان واحد دارند. مغزش یکیاست. سه، به هم پیوسته هستند. من چهار در راستای هدف واحد حرکت میکنه مثلا ماشین رو نگاه کنید بالاخره همه اجزا دست دست هم میدن تا ماشین به سمت جلو حرکت کنه یکی از این اجزا همراهی نکنه این ماشین حرکت نمیکنه احکام اسلام احکام شریعت هم اینگونه هستن لذا با این نگاه باید بری سراغ استنباطی که دارم میگم تو روش شناسی هم ثمره ایجاد میکنه با این نگاه باید بری سراغ استنباطی که یک چنین شریعتی رو کشف کنی که یوجه با بعضها با بعض هم و لایسته با بعضها الا با بعضه اگر بعضی واجب میشن به خاطر بعضی دیگر هم. و اگر بعضی واجب شدن بعضی دیگر رو واجب می کنن. حالا این دو کار ما کارمانیست ملاقات احکام دست خدای متعاله بله اگر دست من بود مثلا ما خانون گذار بودیم خودمون می شستیم. تمام مسائل رو من خوزید و می رکیم رو میست و می گفتیم برای این مسطح این این ها که این ها اون رو می اون ها هم این رو این هم این یک دومینوی مثلا درست میکردیم می ساختیم ما وزیف همون کشف به این نظام منسجمه نظاممنده نظامبخشه هست وزیفی ما کشفه ولی رای با این نگاه خیلی کار استنباد کار بلاخره سخت می خب در ادامه حضرت عجی خودتون می که و اعظم و مخطر از سبحانهم تلك الحقوق بزرگترین حقی که خدای متعال قرار داده از این حقوق چیه حق الولی علی و حق الرایا علی الوالی. حقوق والی یعنی حکومت بر مردم و مردم بر حکومت است این حق یعنی تکلیف هم دادن این حق اینها برای اینها این تکلیف بین اینها نص اونها تکلیف حکومت نسبت مردم تکلیف مردم نسبت چون در سرد این قطبه این خطو در کتاب کافی هم اومده در صد این خطو حضرت به, به این اشاره کردن که هر جاه هرگه هست حکیه چیز همه هست فریزتن فرزه الله و سبحانه این فریزه رو خدا قرار داده برای چی؟ فجعه ده ها نظاما لألفته هم و ازدن دینه این حقوق متقابل رو برای چی قرار داده؟ نظاما لألفته آمل نظاممندی پیوند امام امت برادر. پرس کردیم مهمترین انصول انصول نظام سیاسی. اون نظام سیاسی کی به استواری و اصلا به, به،, به تحقیق میرسد وقتی امام امت با هم یه پیوندی دیده اصلا ولایت مناقی اصلا پیوستگیه یعنی با هم پیوند رو پیوند نکنن این نظام سیاسی در کتاب ها میمانند که تحقق پیدا می کند وقتی مردم بیان وقتی حاکم بیاد اینا با هم پیوند پیدا قدرت اجتماعی و سیاسی شکل بگیرد و در دل این پیوند و این قدرت جامعه یکی به حکومتی برسند یک حکومت آزاد منی خب عامل پیوند امام و اممت چیست؟ همین حقوق نیست که خدای متقارد تحیل کرده این حقوق فجعه را هم نظامن در غرفت اینها عامل پیوستگی عرب و ازدن دین هم و عزتمندی دین این ها یو زهره دین همین حقوق بالی علی رعیه و حقوق والی علی پر بالی علی رعیه و رعیه و غلق بالی هست. این یعنی فقه نظام سیاسی فقه نظام سیاسی میخواهد دست به حق حق بالی و رعیت رو و حق رعیت یعنی حق حکومت حقوق و تکالیف امام بر مردم و حقوق و تکالیف مردم نسبت به امام و حاکم برای ما در نظام مسائل فقه سیاسی اون از همین دو گانه وارد شد مثلا خطبه 216 یعنی ساختار فقه سیاسی رو بر همین اساس شکل دادیم ان شاء در جلسه دوم وقت دومش من به دو اون اشاره خواهم کرد بر اساس نظام امام و بر اساس همین خطبه 216 که حد... فکر نظام سیاسی میخواد چیکار کنه میخواد نظام امام و رو برقرار کنه تاشک کنه احکام تکالیف به امام بر امت امام نسبت به امت و امت نسبت به امام رو که در سایه کشف اینها اون فقه نظام سیاسی بیان می شود حالا اجراش میشه، اجراش یعنی که می عمل بشه، تا اقامه بشه. بد. حضرت در ادامه می‌فرمایید که ببینیم تاکید بیشتری کند بر اینکه این چگون این چگون چه, چه جور نظامی هست. میگه که اگر هر کدوم از این دو دسته یعنی امام و اممت هست، حاکم و مردم، به وضایفشون عمل کردند چی میشه بردان؟ اگر هر کدوم از اینها تخطی کردن از وضایفشون چی میشه؟ و حق اگر رعیت به والی حقش رو ادا کنند، و اندل والی علیه حق ها حقها، والی هم حق رعیت رو ادا این مردم رو ازدال حق و بینمون حق و بینشان عزیز میشه و قامت مناهج و دین نمیگید میخواد اقامه دین بکنید اقامه دین به واسه اینه که این دوتا تکالیف خودشون عمل میکنن و اتدلت معالم العدل نشانه های ادالت آشکار میشه و جرت علا اداله ها از سبک زندگی های اسلامی برقرار میگه یعنی همه چیز روی, روی چرکدنده ها روی روغنکاری بکنی که درست به چرخه یه یعنی همه چیز مثل ساعت کار خار بکنی تشویر بکنی قامت و ناه جدین اعتدلت معالمالعر جرد حالا ازال از سنن سبک زندگی اسلامی حالا اگر غلبت رعیت و والی ها والی یعنی مردم غالب بیدا کردن و ضعیت یعنی چه غلبه بیدا کردن یعنی ما فرمانی کردن یعنی زیر ذیل چتر خودشون گرفتن یعنی به جایی که حاکم حکم براند این مردم بودن که شدن حاکم من در جاها تبدیل نظام دموقراسی دموقراسی غربی نظام غلبه مردم برگاریه نظام غلبه مردم بر حاکمه در حالی که نظام سیاسی اسلام نظام نظام سرمان روایی حاکم اونم حاکمی که با اون شرایط خواسته که ما میگیم بر مردم هست و نظام این یک ناهمخانی بسیار جدی میانه نظام سیاسی اسلام ولی اون نظام مردم سالاری دینی نظام مردم سالاری دینی با نظام دموقراسی غلیست که میگم معنی نظام خلافت مثلا داعشی نیست که اون بالا بشینه و همون مردم سالاری دینی رو مارس کنه. اما بر پایه ولایت حاکمه نظام است. اونها نه اونا بر پایه‌ی مردم یعنی غلبه مردم غ مردم که میگیم یعنی در حقیقت بنویسید مردم بخوانید احزاب و نظام دارید. واقعیتش اینه این واقعیت درستون دیگه من موضوع شناسته راست از, از, از, از آقا نسبت به جهان معاصر نمیذارم که ایشون بارها تحصیل کردهن که نظام دموکراسی غربی نظام حاکمیت احزاب سرمایه سالار هست بر, بر جهان و بر حکومت ها و بر جوامه نه مردم حالا با اون سختار ها و شکل شمالی که داره خب اه و, اه و ازا غلبت رعیه اگر مردم غلبه کردن بر والی او اجحفل والی به رعیته یا حکومت و مردم ظلم کرد اختلفت حکومت که میگی ممکن کار گزاران حکومتی باشه گل می کردن اختلفت هنالك از این دارن در اخبار نمیدادن قایونه ربا یزد من نگستم الان دارن دور میکنن این یه وقت داشین دید اختلفت هنالك کلنما اینجا اختراف ایجاد میشه یعنی اون اتحاد اون نظام امم امت و ظهارت معانمون جو نشانه های جور و ظلم آشکال میشه و که در ادغال و فدین ادغال و فدین یعنی پیلگری در دین زیاد میشه از روی هوا و حوث میشه و ترکت مها سنن سبک زندگی های اسلامی سنت های اینی فراموش میشه با اساس نه اساس و احکام براساس حوا خدا و احکام تعطیل میشه این نظام سیاسی علال... علال... علالناس... علال امه... علال امه علال امه. این باون باون تعبیری که عرض کرد باون که عرض کرد نکردم و امام الن و زایفل النمّا اینها اگر درست انجام شد اقامه دین عدالت برقرار میشه، سبک زندگی اسلام اینها انجام نشود، ظلم آشکار میشه، اقامه دین برعکس تعطیل می شود و نشانه های ظلم هم آشکار میشه. تعاملات الهی، هوا، راست هوا نمی دونید، قرآن خدا دیگه عمل نمیشه، اون نظام به هم خورد. این واقعا یکی از خطبه های کلیدی در عرصه ای سیاسی نظام و, و کلت ف نظام و به خصوص پ نظام و سیاسی هست طش میزد نظام هم داره خب پس این نظام مندی رو ما از این خود برداشت میکنیم اون نظام بخشی رو هم از ذیل این خود بردار برداشت که اگر برای این اساس رختار شد انتظام برقرار میشه تعدالت برقرار میشه نظام امام عمد روی غیر خودش قرار میکن ازذت این کارآملی دی اونج می این زیل خود به داره کارامدی رو بیر می‌کنه. ما میگیم نظام سیاسی اصلا باید کارامد باشد ما میگیم کارامد هست درست کشف بشود درست اجرا بشود کارامد است این هم در حوزه نظام مندی در حوزه نظام بخشی یه نکته ای رو ما بینیم. میتونیم اضافه بر این ذکر بکنیم یکی همون فهماشم همون 600 بود در تعریف ا حکم شرعی یکی از فماج از امام هست. از امام در کتاب ال کتاب الولای خودشون در مبحث ولایت فقیه میفرماین که احکام فما که یه جمله دارن در زیر روایت العلماء و حسون الاسلام مصور نظام بخشی رو میخوام اصلا العلماء و الاسلام یعنی چی حسون یعنی چی دش دج. علمات دژبان اسلام حسن. می میفهمایید که ببینید ال... اونجا میگه اینا الاسلام و حکومت اسلام یعنی حکومت چون اصلا اسلام برای برقراری حکومت عادلانه اومده ول احکام و قوانین اسلام میگه در این خطبه یک چی انجام شده یک در این در این حدیث یک استعاره یا یعنی. تشبیه انجام شده بله اینجا نوشته و احکام و قوانین اسلام می که اسلام این حکومت احکام قوانین این حکومت هم و علما هم دجوهای و مراقب این حکومت هستن ولیذار این با ولایت فقیل والیه بر این حکومت والیه بل این اسلام والیه بل این حکومتی که اسلام هست با این قوانین فقیلی برای این تربیر خیلی حالا تا اونجایی که وحیش همون میشه اونها بل الاحکام برای این دوله سنگینیه نیاز به توصیف داره مطلوبات بالعرق و امور آلیه به اجراعه ها و بس عدالت احکام برای چی هستن؟ احکام برای بست عدالت برای تنظیم امور. این همون فرمایش ما مطرحیسته داره لی تنظیم حیات الانسان این در کلمات خیلی دیگر از فقاقا هم هست برای تنظیم امور اسفان یه بخش عدالت اد، به یک معنا، یعنی وضع اکل شعین فی موضع تنظیم امور پس به این معنا، عدالت همون تنظیم اموره وضع اکل شعین فی موضع احکام به هدف تنظیم ادالت به هدف عدالت ادالت آمده ولذا از امام موجود در مبنی بلد فقیرشون متقلدن که اگر دیدید که جای احک پر خلاف ادالت داره نتیجه میده اینجا به طور قطع دسیدی به این میتونی مثلا اون حکم شردی رو به طور موقت تحتیر کنید تا اون جریان امور به حال خودش بشهده عنصر اختلال نظام در تراس فقهی ما از همین منبعنش قدیر است چون اگر در کلمات فقه ها نگاه بکنید موارد فراوانی، هست که به خاطر این که یک حکمی منجر به اختلال نظام شده اون حکم تغییرش داده من نمونه هایی رو آوردم در اینجا مثلا فرض کنید که حرمت اخذ اجرت ور واجبات میگن اخذ اجرت ور واجب حرامه بعضی این نظر رو داره از اون طرف میگن آقا اگر بخوایید بر عبرهای انجام واجبات اجرت ندیم. کسی نمیاد اینو را انجام بده. ها. مثلا پزشک وقتی واجب است. و اگر اجرت ندی کسی نمیاد پزشکی کنه. مریضا میوزن میمیرن. خب اونجا میگن که واجبات نظامی است اینا. حفظ نظام واجبات نظامیه که حفظ نظام متوقف بر اونهاست. بله ولی واجبا ولی اجرت میشود داد. چرا میشود داد؟ به خاطر اختلال نظام. یعنی که برای تنظیم نظام اگر یه حکمی نتیجه اش اختلال نظامو حکومت رو ارزش می‌کنه فقها این کارو کردن سلام که ممکنه مثلا در عرصه هم در عرصه تطبیق هم اونجا رسید موی تطبیق ماجرا یک کسینی نمی‌تونه از باب واجبات نظامیه مثلا اخذ از مثلا حالا بحث حرمت اخذ در واجب محل مناقشه است مثلا یعنی حالا نه روسوغری نخوازم اون کنم واقعا میشه تفکیکی کرد بین اینکه ارتزاق پیدا ارتزاقش گفتید تبیین قرائتی گفتید ما برای خدا کار می‌کنیم ولی اصل از اول از خلق باید بگیره بالاخره تا این دیبا این ارتزاق یعنی ما معتقدیم در نظام اقتصادی برعکس معتقدن که ما که سیستم کار نکردیم اما برعکس که کار کردن معتقدن که سیستم ارتزاق سیستم حقوقی اسلامه به خصوص در حثه واجبات و امور نظامیه یعنی چی یعنی زندگی او رو این در عمل قاضی هم هر از بیت داشته باشه داشت. جهادگران ارتزاق از بیت المال داشته اندازه شهرشون حقوق بایشون شون نه به خاطر اون کاری که انجام میدن به خاطر ارتزاق ارتزاقشون میکنید تا اونها برن رو و رو برای خدا انجام میدن مدل شهریه ای که ما داریم به جوری به همین ترتیب میتونه جاری بشه البته اولا خب خود مرحوم شیخ در مقاسه بحث ولایت عدور مؤمنی یه بحثی دارن اونجا میخوام میگم باز ببینیم اصول نظام بخشی میخوام بگم که نگین نکنین اینا بدعت اینا حرفایی که ما از خودمون داریم میزنیم مرحوم شیخ در ولایت فقیه حالا بحث ادول مؤمنی مطرح کردن میگن که آیا تضاحم ولایات با هم جایز هست یا نه یعنی چی یعنی مثلا فقیه علق وارد شده یه کاری رو انجام بده وقت ما رو به پایم. اه. بله. یک دقیقه رحم. میگن که اینو بگم بعد حالا اگر ما اجازه می‌توامن. میگن که مثلا بیا فقیه الف اومده کاری انجام بده، فقیه ب آیا میتواند ورود پیدا بکنه در کارو بیا هر دو ولایت دارن معقوله مطلوبه از دو بلای داره. آیا میتونی یه بحث نقلی داره که اصلا ادارهی نقلی انصاف داره. میگه یک نفر که اومد دیگه نفر دوم اصلا ودهاتش از وین رفته. ما رو به بحثی خودش یه بحث اختلال نظامی میاد اینجا. میگه اگر ورود تظاهرهای بلایت فقیه با فقیه دیگر جایز از باشد، نتیجهش اختلال نظام است. تو خاطر همین جایز صرفان از عنصر اختلال نظام استفاده میکنه. برای اینکه وحدت ولایت تساوی بکنه میگه شأنیت ولایت برای مثلا 5 تا فقیه است اما فقیه شماره یک که ورود پیدا کنه دیگه فقیه شماره دو اجازه ورود نداره باید اطاعت کنه وظیفه‌اش اطاعته حالا این توی صدق قدیم اینجوری یعنی که انتخاب در واقع فقیه مثلا صورت نمی این مسائل اتفاق پس این باز عنصر اختلال نظام رو موجب دار بید اومده که نظم تو جامعه ایجاد کنه اگر قراره که یک گونه طبیعی اگر نتیجه،, نتیجه چی میشه نتیجه یک استنباطی کردم تمام شد استنباطم رو تمام مراحل و پیش رفتن حالا میخوام بیام ببینم که عجب اینو بخوام با بقیه نظامها جو در بیارم تا نظام ایجاد کنه باید چیکار کنم باید برگردم دوباره استنباط کنم ببینم کدوم یکی از این الانسل درست استنباط نشده که این داره به اختلال نظامون میشه و الله فقه آمده است برای تنظیم امور، نظاممندی و نظام بخشی این حالا دو تا از اناسر فقه نظامیسی، های فقه نظامیسی، رو خود عرض کردم یکی، اینکه مکلف به این فقه فقط فرد نیست بلکه حکومت است، بلکه جامعه، جامعه به ماه و جامعه هست این یکی میشگی بود، میشگی دوها منصور نظامندی و نظام بخشیه دارف فتنه نظام سیاسی از این دو تا عناصر کلیم یعنی ما بدون توجه به اینها بریم سراغ فتنه سیاسی با همون نگاه بدون توجه به این عناصر احکامی که استنباط کنیم احکام درستی نخواهد بود حالا بحث روش شناسی یه بحث مفصلیه من فعلا ویژگی ها رو در اینجا شد. خب این عنصر دیگه هم, هم را را هست ان الله استراتی بفهمید بعد ان شاء الله در و الحمد لله بله ببینید این ها احکام سانویه میشه کارجو بله اینه حالت اولین است که